All right. عطل متل تو طوله بگو زندگی چه جوره قشنگه یا یاگه چرخش میلنگه الگریه یا خنده بازنده یا فرنده اصلا مهم نی جفنگه اینجا همیشه یه رنگه عطل متل تو طوله علی کجاست تو کوچه یه اتفانم تو کوچه. شرا رو پوشه ششماش در میشن هینگ باز قلبن میخنده اون همیشه تو راهه بگو میره یا که بر میگرده عطل متل سرم پر به یاد روزه اشنگتر یاد گرفتم به جنگم نه جنگیگن نه جنگم لگت نشم مذفه تو تای خیابونو بلچم نشنگتر اینه نترسم نظارم زیر یا لگت جن عطل مطل مت مت وگب وگب کش کش قدم قدم ایوال خیابونو میگم عشقه سرگشم که گیرم میگیره به دنیا من اینم اگه سرکشم نشم که گیرم از تو دنیا عطل، عطل، دیوونه یه دل دارم که خونه اگه میتونی بشونش جور داره چه جورش عطل، عطل، غصم به قلبم مثلن نمیترسم ها خطر و کفن و مرگ و سنگ قبرم عطل، عطل، چند خط دردم تو چند زربت دخت تر میشن قشنشن عطل و عطل و یه گردن یه تقصیر میگن جل و طرخت چین چیزی زینا گم از چش تو بگو میگم چش نگم از شب و مزش چش تو بگو میگم چش یعنی نگم خستم از این آدم های بی مصرف ولی تو که بهتر از همه میدونی من چند چند دم چش تو بگو میگم چش اصلا بگو نخونم چش تو بگو میگم چش اصلا بگو نمونم چش تو بگو میگم چش اصلا بگو بچم نمیتونم ازت رختم چش تو بگو میگم چش کش دو ابرو دماغو دهن پر از لیلا ی من باپه اون میگه تو مجنون لیلا که من دیدونست عین خودم بی میگه با میگه باهام بمون پس منم بهش میگم چشب لیلا لیلا میگن که کاش قهره عشق منو تو صحره ولی یک کلمه هرگز لیلا لیلا انا لیلا انا میخوام به خونم ولی زندم من دیلا قنگار لیلا صدام وقت بق وقت میگن نلی صحمک حق زادان هر دارم حق حرف حق حق دیرم من کیا خطت تو درمنده. اگه ببرن کت بسته نمی علی بسکتش عطل متل تو طوله زندکی با قرورش طلوع و گروبش همه ی اوج و فرودش عطل متل متمر و جب و جب شششش قدم قدم ایور ولی جفت هاست و ورد